ساخی یا برفیز در دهجام را خاک بر سر کن ایام را ساغر می بر کفم نه تازه بر برکشم این دلغ از رغفام را گرچه بد نامیست نزد ما نمی خواهیم ننگ و نام را باده درده چند از این باد غرور خاک بر سر نفس نافرجام را دود آه سینه نالان من سوخت این افسردگان خام را محرم راز دل شیدای خود کس نمی‌بینم ز خاص و عام را با دلارامی مرا خاطر خوش است که از دلم یک بار بردارام را نن دیگر به سرو اندر چمن هر که دید سر و سیمندام را صبر کن حافظ به سختی روز و شب عاقبت روزی بیابی کام را